یک حقیقت تاریخی اوریون با تازیانش به میان سگهای خسته نیرو گرفته از خشم و پیروزی گام نهاد و آنان را از آن جسد قولاسا دور کرد و در حالی که تازیانش را در دایره عظیمی میچرخاند شمشیرش را در دست دیگر گرفت و سر اسب شاخدار را از بدن جدا کرد همچنین پوست گردن بلند سفیدش را چسبیده به سر از گوشت جدا کرد در تمام این مدت سگها حلقه زده بودند و هرگاه فرصت گریختن از تازیانه را میافتند یکی یکی به آن جسد جادویی حمله میبردند برای همین مدتی طول کشید تا اوریون بتواند یادگار پیروزیش را بردارد چون ناچار بود با شمشیر و شلاقش همزمان کار کند اما سرانجام آن را برداشت و با نواری چرمی به شانه اشاویخت شاخ عظیم از سمت راست سرش بالا آمده بود و پوست کند شده ی گردن اسب بر پشتش آویخته شده بود و هنگامی که آن را بدین گونه آماده می کرد، به سگهایش اجازه داد دوباره به سراغ جسد بروند و آن خون شگفتانگیز را بچشند سپس شیپورش را نواخت و آنها را فراخواند و به سوی ارل حرکت کرد همه به دنبالش براه افتادند و دروباه جلو آمدند تا آن خون شگفتی آور را بچشند چون برای همین نشسته و منتظر مانده بودند. هنگامی که اصب شاخدار از آخرین تپش بالا می رفت، اوریون احساس چنان خستگی کرد که بیشتر از آن نمی توانست پیش برود. اما اکنون که آن سر سنگین از شانه هایش آویزان بود، تمام خستگیش از بین رفته بود و به سبکی بامدادش راه می رفت. چون این نخستین اسب شاخدارش بود. و سگهایش نیز نیرویشان را باز یافته بودند، گویی خونی که لیسیده بودند نیروی شگفت در خود داشت و پرهیاهو و جس وخیز کنان و دواندوان دوان به سوی خانه میرفتند. درست همان گونه که به هنگام رها شدن از غلاده میدویدند. بدین ترتیب اوریون شب هنگام از فراز تپه به خانه بازگشت. و سرانجام دود اِر را در دَرۀ روبرویش دید. چراغی دیر هنگام پشت پنجره یکی از برجهایش میسوخت و پس از اینکه که از راه های آشنا از تپه پایین آمد، سگهایش را بلانه هاشان برد و درست پیش از دمیدن سپیده پشت در قلعه شیپورش را نباخت نگهبان پیر قلعه که در را بر روی اوریون گشود، شاخ عظیم اسب شاخدار را دید که از پشت سر اوریون بالا آمده بود. این همان شاخی بود که سالها بعد به عنوان هدیه ای از سوی پاپ برای شاه فرانسیس فرستاده شد. بنونات چلینی در خاطراتش از آن یاد می کند و تعریف می کند که پاپ کلمنت به دنبال او و فردی به نام توبیا فرستاد و به آنها دستور داد برای تزیین شاخ یک اسب شاخدار زیباترین چیزی که دیده شده ترهیب سازند. پاورقی بن تو چلینی 1500 تا 1571 میلادی تلاساز، پیکرساز، ریختگر و نویسنده ایتالیایی ادامه داستان پس شادمانی اوریون را درک کنید چون شاخ نخستین اسب شاخداری که او شکار کرد چنان بود که نسلها بعد زیباترین چیزی دانسته شد که تا آن هنگام دیده شده بود و آن هم در شهری همچون روم، که در آنجا فرصت به دست آوردن و مقایسه چنین چیزهایی زیاد وجود داشت چون میبایست تعدادی از این شاخهای غریب در دسترس پاپ وجود میداشتند تا به عنوان هدیه زیباترین آنها را انتخاب کند اما در این روزهای ساده تر داستان من این شاخها چنان نادر بودند که اسب‌های شاخدار هنوز افسانه‌ای دانسته میشدند سالی که این هدیه به شاه فرانسیس داده شد حدود سال 1530 بود شاخ بر پایه از طلا نسب شده بود و قرار داد با توبیا بسته شد و نه با به نوت تاریخ را برای این گفتم که افرادی وجود دارند که اگر یک قصه اینجا و آنجا توسط تاریخ پشتیبانی نشود اهمیت کمی به آن میدهند و حتی در تاریخ هم بیشتر به وقایع اهمیت میدهند تا به فلسفه تاریخ اگر چنین خواننده‌ای سرنوشت اوریون را تا اینجا تغییب کرده باشد، اکنون تشنه شنیدن یک مقطع زمانی یا واقعه تاریخی است. به عنوان مقطع زمانی 1530 را به او میگویم و به عنوان واقعه تاریخی آن هدیه ثبت شده توسط بن و چلینی را برمیگزینم. چون ممکن است این خواننده به هنگام رسیدن به از پای شاخدار در این داستان احساس تنهایی و دوری از تاریخ کند البته در مورد اینکه چگونه شاخ اسب شاخدار به بیرون از قلعه ایر راه یافت و در چه دستهایی سرگردان شد و چگونه سرانجام به شهر روم رسید باید کتابی دیگر نوشته شود. اما تمام آنچه اکنون باید درباره آن شاخ بگویم این است که اوریون سر را به نزد ترل برد ترل پوستش را از سر جدا کرد و شست و را ساعتها جوشاند و دوباره پوست را سر جایش بر روی جمجمه گذاشت و پوست گردن را پر از کاه کرد و اوریون آن را در مرکزی ترین قسمت میان تمام سرهایی که در سرای بلند آویخته شده بودند قرار داد و شایعه شکار اوریون به تندی تاختن اسب شاخدار در ایرل پیچید بنابراین شورای ایرل دوباره در کارگاه نارل تشکیل شد در کنار میز نشستند و بر روی این شایعه بحث کردند و دیگران همچون ترل سر اسب شاخدار را دیده بودند و نخست به خاطر حفظ تفرقه های کهن بر این عقیدهشان که هیچ اسب شاخداری وجود ندارد پافشاری کردند شراب گوارای نارل را نوشیدند و دوباره درباره جانور بحث کردند اما پس از مدتی یا به خاطر اینکه جدل تریل متقاعدشان کرد و یا به احتمال بیشتر به خاطر تسلیم شدن به سخاوتی که همچون گلی زیبا از شهد شبدر میخواست گروه معترض پذیرفتند و هنگامی که رأی‌گیری کردند، روشن شد که اوریون اسب شاخداری را شکار کرده است. در آن سوی دشت هایی که میشناسیم و همه از این موضوع شاد شدند چون سرانجام جادوی را میدیدند که در انتظارش بودند و سالها قبل هنگامی که جوانتر بودند و امید بیشتری در برنامه هاشان داشتند به خاطر آن نقش کشیده بودند. و پس از ریگیری نارل باز هم شراب آورد و باز به خاطر این موقعیت فرخنده نوشیدند چون میگفتند سرانجام جادو به سراغ اوریون آمده و آینده ای در انتظار ایرل است. و آن اتاق بلند و شمها و آن جمع دوستانه و آرامش ژرف حاصل از شراب برای آنان نگریستن به آینده و دیدن دورانی را که ایرل در شکوه می درخشد آسان تر کرد. و دوباره از روزهایی در آینده نزدیک سخن گفتند که سرزمینهای دور نام دره محبوبشان را می شنیدند. بار دیگر از اشتهار دشت های ایرل گفتند که از شهری به شهر دیگر میرسید. یکی قلعاش را میساود دیگری تپه های بزرگ و بلندش را، یکی خود دره را میستود که از چشم همهی سرزمینها دور مانده بود و دیگری خانه های عزیزی را که به دست مردمانی کهن ساخته شده بود. و دیگری جنگل های ژرفی را که بر فراز خط آسمان لمیده بودند، و همه از هنگامی صحبت می کردند که سراسر جهان پهناور به خاطر جادوی اوریون ایل را خواهد شناخت چرا که میدانستند جهان شامه تیزی برای استشمام جادو دارد و همواره به سوی شگفتی ها روی می آورد حتی اگر به خواب رفته باشد صدایشان به ستودن جادو بلند بود و باز از اسب شاخدار و شکوه آینده ایل می گفتند که در باز شد و نجات دهنده در آستانه در ایستاد. در ردای بلند سفید و نوار سرخش در درگاه ایستاده بود و پشت سرش شب گسترده بود. در نور شم هایشان که نگاه کردند دیدند نشان مقدس را با زنجیری زرین به گردنش آویخته است. نارل به او خوش آمد گفت برخی سندلی هایشان را به سوی میز کشیدند اما او شنیده بود که درباره اسب شاخدار سخن می گویند. صدایش را بلند کرد و به آنان گفت نفرین بر اسب‌های شاخدار و تمامی کارهایشان و هر آنچه جادویی است در بخشتی که نایهان فضای دلپذیر اتاق را دگرگون کرد یکی فریاد زد سرور من ما را نفرین نکن نارل گفت نجات دهنده عزیز ما هیچ اسب شاخداری شکار نکردیم اما نجات دهنده دستش را بالا گرفته بود و همچنان اسبهای شاخدار را نفرین میکرد. فریاد زد. نفرین بر شاخشان و مکانی که در آن میزیند و زنبقهایی که از آن میخورند. نفرین بر تمامی ترانه هایی که از آنان میگویند. نفرین بر آنان و هر آنچه از رستگاری بیرون است. در حالی که هنوز در درگاه ایستاده بود و با سنگینی به درون اتاق مینگریست، مکس کرد تا به آنان اجازه دهد عصبهای شاخدار را تکفیر کنند و آنان به برق و شفافیت پوست اسب شاخدار اندیشیدند به چابوکیش، به زیبایی گردنش و زیبایی مبهمش هنگامی که آن غروب از ارل می گذشت. به شاخ نیرومند و سهمناکش اندیشیدند ترانه هایی که را به یاد آوردند که از او می گفت. در سکوتی نا نشسته بودند و اسب شاخدار را تکفیر نمیکردند و نجات دهنده دریافت به چه چیز میاندیشند و دوباره دستش را در نور شمع و در شبی که پشت سرش بود بلند کرد و گفت نفرین بر سرعتشان و پوست براق و سفیدشان نفرین بر زیباییشان و هر آنچه از جادو دارند و هر آنچه در کنار جوی بارهای جادو شده گام میزند و همچنان در چشمهایشان عشقی مردد نسبت به آنچه ممنوع کرده بود می‌دید و بنابراین از گفتن باز نیستاد صدایش را بلندتر کرد و با چشمهایی که با خشم با آن چهره به دردسر افتاده دوخته بود ادامه داد و نفرین بر جنها و پریان و دیوها و سی و عصبهای بالدار در آسمان و پریان دریایی در دریا قوانین مقدس ما آنها را تکفیر می کنند و نفرین بر تمامی تردیدها، تمامی رؤیاهای فردی، تمامی تخیلات و تمامی مردم راستین از جادو بدور باشند. آمین. برگشت و ناگهان در شب ناپدید شد. بادی در را محکم بست و اتاق بزرگ درون کارگاه نارل همچون چند لحظه پیشش شد. اما حال و هوای دلپذیر آن اکنون گرفته و تیره می نمود، و سپس نارل از انتهای میز برخاست و تاریکی سکوت را شکست و گفت آیا ما مدتها پیش نقشه کشیدیم و ایمانمان را به جادو سپردیم تا اینک چیزهای جادویی را تکفیر کنیم و همسایگانمان مردم بیازاری را که ماورای دشتهایی که میشناسیم زندگی میکنند و موجودات زیبای آسمان و عاشقان دریانوردان مرده را که در زیر دریاها زندگی میکنند نفرین کنیم؟ برخی گفتند نه نه و دوباره شرابشان را سرکشیدند و سپس یکی جام شرابش را بالا گرفت و برخاست و سپس یکی دیگر و سپس دیگری تا جایی که همه در کنار نور شامها ایستاده بودند یکی فریاد زد جادو و دیگران با هماهنگی فریاد زدند جادو نجات دهنده به هنگام برگشتن به خانه فریاد جادو را شنید ردای مقدسش را بیشتر به دور خود پیچید و اشیای مقدسش را در مشت گرفت و تلسمی بر زبان آورد که او را از شیاطین و چیزهای تردید برانگیز به دور دارد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی